حتی دیدار آخر شاید رسید از راه بردای یه روزه بهتر اما کبادارت چون بلدی بخندی و چشم دل ببازیم با اش دل ببندیم اشما که دل سبز سبزه هیچی در توی دنیا از اوج موج شادی تا پردا و پس پردا بچوکه از بس سبز هیچی در توی دنیا از اوج موج شادی تا پردا و پس پردا سلام علیکم حال احوالتون چطوره خوبین خوشین سلامتین یک رادیو پس پردای دیگه با شما ایم و این 5 و 4 دقیقه آینده رو با ما باشید سراغ موضوع امروز و شعر شاعرمون و اما بابا شاعر اوریان یا همون شاعر رادی پسورده این هفته سروده که سراپا انتظارم چون ننالم عجول و بیقرارم چون ننالم تموم چشم و چارم چپچپونه دیگه طاقت ندارم چون ننالم تو که کارت شده هی بیقراری، تو کار دیگه اینجا نداری شده موها سفید و پیر و فرتوت به تو عقلی بده ما هم لاتاری مو و صبر و غم و بد انتظاری کرش شانس ما بستن به گاری تفلی منتظر بودم همیشه شدم شکل خود مرغ سخاری مو با این انتظارات فضایی عزیزم این وراب پس کی میایی. آیی دو چشم مکور و مکور چپ من کجایی تو دقیقا با کیایی خب تشکر می از بابا شاعر اوریان یا همون شاعر برنامه این هفته موضوع برناممون هم همطوری که از شعر بابا شاعر اوریان متوجه شدید فهم در انتظاره موضوع این هفته همون انتظاره حالا هر مدل انتظاری که مد نظر شما هست از اون ا آه میکشین میگین پس کی به سر میاد بابا یا از اون انتظارا که هیچ وقت به سر نمیان و هی وقت چشیده شون و البته خب 300 مدل انتظار دیگه که تو فرهنگ ما ایرانیا هست و ما باهاشون همیشه درگیریم خلاصه انتظارات شما رو هم سعی میکنیم این هفته که موضوعمون انتظاره برآورده کنیم باشد که مورد قبول بیوفتد پس شب ساعت نه هر شب دم در وایسید اما خانمه هایین دختر خانمه ها خب پسر را توی گیردار جنبجوش طرفداران نامزدها و گروه های انتخاباتی ما همه جور فعالیت انتخاباتی دیده بودیم جز نوه خونی انتخاباتی که خب به لطف فعالان حال فعالان اونوری اینجوریش هم دیدیم دیگه هم یعنی معظم میشه هر گونه هر بار گه مثل من عاشق <متصفيق> بله یعنی شرایطی جوری شده این دوستان میخوان برن رأی بدن مثلا یه جوری برخورد میکنن موقع رأی دادن انگار میخوان برن بصره رو بگیرن خب همهم دارن میزنن تو سر و سینه‌ش خب آخه بابا چرا اینجوری میکنین برای رای دادن آخه چه نیازی هست که انقدر به خودت جو بدی حالا فرض کن مثلا شور حسینی هم برات داره چی میشه مگه بیشتر از اون 46 تا اسم میتونی بنویسی رو برگه یا بیشتر از یه برگه مثلا میتونی بنویسی صندوق البته آدم چه میدونه حالا شاید اینا بتونن دیگه خلاصه این دوستان میخوان برن و به حرف و حدیث ها پایان بدن و چشم انگلیس هم در بیارن با با بله و چه قوقایی هم شده اتفاقا توی شعبات رایگیری درست پیش بینی کرده بودن ولی منتهات چیز تیر اجابت اشتباهی جا خورد به آقای کوچک زاده نماینده تندروی مجلس مجلس قبل که این دوره هم کاندید بود و بنده خدا میخواست بره حسینی ارشاد رای بده که اینجوری شد بله همدان بنا رأی بدن دیگه با شور شعار درود بر خاتمی و ته صف صف دیگه فرستادنش بره ته صف و بند خدا مجبور شد تر در, در پشتی بره تو اینجوری شده. اما خانم آقا این دختر خانم آقا پسرام من نمیدونم یا این برنامه های تلویزیون و این سریالایی که تو تلویزیون نشون میده اینو ما بد می اینا رو یا بعضی از کارشناسان عزیز وطنی این برنامه ها رو چپکی می‌بینن نمیدونیم چه جوریه شما فکر کن آقا یه برنامه های سیما اینقدر غیر جذاب سر ندیدنش ندیدنشون دعواز بعد آقای کارشناسی به اسم آقا اومدن تو همین تلویزیون دارن تو برنامه هفت تعریف میکنن که رفته توی دانشگاه تو پاکستان بعد اونجا خیلی مسئولین اون دانشگاه از برنامه های سکسی بله سکسی تلویزیون مدل پولی داشتن گوش کنید ببینید چی میگن گمانتون بر این برمونشون بچه‌مون تو دانشگاه بینالدی پاکستان کمه <تصفح> خارجی‌ها و اینا بودن گفتم چطور گفت خیلی سکس خشنی دارید آه. و این آه. آه. اصلا این سکسی که شما دارید در شدت پیدا میکنه تو فیلمامون حالت بدنی به بازیگر خیلی خشنه سکسش خیلی خشنه لباس به شدت خشنه دیالوگ‌ها به خشنه این همون برایا میفهمند اینا یعنی در واقع معنای جنسی داره صدایی جنسی هست اینا بله آقای کارشناس با تو رو خدا شما اگه نصابی سراغ داری که میتونه دیشه ما رو هم اون سمتی که دیشه شما هست تنظیم کنه خب شما اجازه بده سب کو شما مطمئنی تلویزیون ایران رو نگاه می‌کنی مطمئنی شبکه شبکه‌ی نمیدونم پورن فلانو نگاه نمیکنی. نه نچرخیده یه سمت دیگه عجب. اینا که میگی ما تلویزیون ایران نیستا سکس خشن و حالا جالب اگه برید سوابق همین آقای فیاضو نگاه کنید می‌بینید از نظرشون حتی آقای مطهری نه علیشون شونا باباشون بله آیت الله مطهری هم از نظرشون غرب قرب هستن تو فلسفه غرب گیر کردن دیگه شما خودتون تا ته همین مسیر رو برین دیگه در صورت ما همینجا ضمن پافشاری بر موزه شماره نصاب خواهیمون از مردم هم خواهش میکنیم خیلی با هم خشم برخورد نکنن خصوصا بازیگرای این برنامه تلویزیونی و اینا میس کی میس که اون بخشایی که ایشون دیدم که خشن بودن دیگه که بعضیا با دیدن فوش و فوشکاری هم میشن عجیب نیست وقتی بوت پوشیدن خانمها برای سردار رادان اونقدر فشار آور بود دیگه خوشونت که دیگه چی دیگه والا او oh, yes. سلام آقا فرشید من ازتون خیلی فاصله ندارم و همین نزدیکیاتون منم یه کارگاه شیرنی شیرینی‌پزی دارم اگه خواستین با هم تماس بگیریم برای شوییتون شیرنی بفرستم دلتون برای ایران تنگ شده دل ما هم تنگ شده ولی برنمهات همیشه ما رو تنها نداشته خدا به آقا خیلی خوب باشه میخوا یه جعبه شیرنی بفرست بعد مصرف شخصی خودم من ببرم خونه ایول ای کرده مرزبا. نمیخواد کل مغازه شو به آقا یکی دوتا تام میار... که نزیم ماش جان مختص کارآموزا ماشالله ماشاءالله میدونین که هم خیلی کمه بعد کل مغازشنی فروشی رو همه رو بفرسته برام مختص خودشو نره بله نارنجک نارنجک <تص> <تص> <تص> <تص> <تص> این مشهدی بود آه. این مشهدی بود ب من ای منظورشون بوده بفرمایید دوستان عزیزان ترجمه نکنید خیلی حالا سعی میکنن دوست این دوست عزیز بفرسند دیگه من تشکر میکنم دوست عزیز خیلی شما حالا انقدر اذیت نکنید رو بخوام بر کل رادیو بخواییم بفرستین خیلی ممنونم از تماستون دم شما گرم که یاد ما بودید اما بریم سر موضوع برنامه که البته اول برنامه گفتم این هفته میخوایم با هم در مورد انتظار صحبت کنیم همونطور که گفته میشه 72 درصد از کره زمین رو آبها و اقیانوسها تشکیل میدن. بیشتر از هفتاد درصد زندگی آدم ها رو هم انتظار تشکیل میده و ما آدم ها بیشتر عمر خودمون رو به انتظار کشیدن میگذرونیم یعنی چی؟ یعنی همیشه منتظریم یه اتفاقی بیفته منتظریم به یه چیزی برسیم منتظریم شرایطمون عوض بشه منتظریم یه طوری بشه کلن همش چایی منتظریم این انتظار کشیدن ها سوایه اون انتظار کشیدن های روزمره توی صف و توی اتوبوس، و مترو و سر قرار رو توی متب دکتر و ایناست مجموع این انتظار های روزمره و اون انتظار ها در کل حجم زیادی از زندگی ما رو پر میکنه و ما این هفته میخواییم با هم در مورد مفهوم انتظار در اشکال مختلفش با هم صحبت کنیم دوزای آخر که عددای مرکوز برنامه پسورداد داره میرسه به تکرقمی اینه فوت کردن هم تولد 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 آتش فایر فرشید جان کجا میری دقیقا کجا میری فرشید ماس, ماس. یعنی کلش ماس ماست فری رفیقم انقدر از این که تا برنامه مونده تموم بشه نگو مرسی بله دیگه بله دیگه از فردا که میریم که شمارش معکوس از 10 داشته باشیم امروز برنامه 990 دیگه دیگه واقعا چرا رفتم چرا من بی قرارم البته امروز که نرفتم ولی دارم میرم آقا میرم میرم, میرم. دیگه پیدام نمیکنین میرم یه جای دیگه هیچ کدمهتون پیدام نکنید حال ببینین که گفتم بله ای جان جنوشتان با حسگان خستگان مرد هم دست و ما را مجروح می‌گذاری امید گر بباید بعد از وفات ما را امید دگر بباید بعد از وفات ما را که آن تهی امیدواری. اندر امیدواری. اندر امیدواری. انتظارها در و انتظار ها در سنین مختلف وقتی انتظار های آدم با خودش پیر می شود ب یا میگه بدانید و آگاه باشید که ما انسانها بیشتر زمان زندگی خود را به انتظار چیزهایی می‌گذرانیم که گاه هرگز نمی‌آیند و گاه وقتی می‌آیند که دیگر منتظرشان نیستیم پس چنانچه در زندگی انتظار چیزی را می‌کشید چهار دست و پام که شده به سمتش حرکت کنید و بدانید اگر منتظر بنشینید و برای رسیدن به آن تلاش ننمایید همانا همه عمر خود را در انتظار به برندگانید ام برای خیلی چیزا تو زندگی یک جا ایستاده و انتظار کشیده ها و هرانم زیر پاشون علب سب شده های رادیو هست دا دا دا, دا, دا, دا, دا از دست همتون میرم خودم رو گم و گمگور میکنم از دست همتون، از دست سام از دست شهرام تورم زن نمیدم همینه که همین که همینجوری بمون یه لغبا والا راه های ارتباطیرم بگیم بریم راه های ارتباطی تلفن ها است دو سف چار سد و بیست و دو یازد و و و دو سی و تلگرام ما هست ات تسفرد ممنونم متشکرم مرسی یه به چشما دارم بلسه تو صدیدنت میقرارم نمیشه که از اون صدرت بشم میارزه واسه تو با همه بد بشم می مثل تویی با همه فرق داری. با خنده هات خوشبختی واسم میاری و تو که قاله خودتون بگی که انتظار کشیدن آدم‌ها از وقتی شروع میشه که یه کمی از آب و گل درومده باشن و به اصطلاح عقل رس شده باشن یعنی تا قبل از این مرحله چیزی به نام انتظار تعریف نشده و یه بچه چند ماه وقتی گرسنه است قبل ونگ میزنه تا به شیر بدن وقتی هم گلاب بروتون به حال میشه دیگه برایش فرقی نمیکنه بغل جون باشه یا رو پای خانم همسایه نشسته باشه اصلا انتظاری در کار نیست کار خودشو در هر شرایطی میکنه ولی کم کم آدم یاد میگیره که گاهی باید انتظار بکشه تا به یه چیزی که نیاز داره و میخواد برسه انتظار کشیدن توی دوران پساشیر خارگی معتوف میشه به انتظار برای جیش و ددر یعنی که بابا و مامان بغلش میکنن یا میذارنش تو کالسکی که ببرنش بیرون بعد کم کم کم که بچه بزرگتر شد این انتظار تبدیل میشه به انتظار... که مثلا کی اصر میشه برنامه کودک شروع میشه دوره ما که یعنی اینجوری بود سر ساعت پنج اون بخش وگ ونگ ونگ ونگ ونگ ونگ ونگ ونگ این شروع میشه ما از صبح منتظر این بودیم سیم ساعت پنج بعد از ظهر این ونگ ونگ ونگ کنیم آره البته روزای جمعه فرق داشت ساعت دو برنامه کودک میداد و بعضی هم فیلم سینمایی پخش میشد یه انتظار دیگه دیگه‌ای هم که بخصوص توی تابستون که مدرسه ها تعطیل بود ماها داشتیم موقعی که بچه بودیم اونم این بود که کی عصر میشه مامان بابا میذارن بریم تو کوچه بازی کنیم تقریبا تا قبل از دبستان و سالهای اولی که مدرسه میرفتیم کل انتظاراتی که تجربه کردیم همینا بود و بس حالا بقیه‌اش هم میرسه توی دوران مدرسه یکی از مهمترین انتظارها انتظار خوردن زنگ و تموم شدن کلاس و مدرسه بود این انتظار البته بعد ها تو دوران دانشگاه هم همراه ما اومد و همیشه از نیم ساعت مونده به تای کلاس زمزمه های استاد حسنبوشید استاد حسنبوشید این همینجوری هی میگفتیم استاد نباشید, نباشید. همینج می شروع میشد یعنی اصلا انگار سری کلاس می اومدیم میشستیم فقط به انتظار اینکه زنگ بخوره تموم بشه استاد حسنبوشید بریم حالا تو دوره مدرسه خب این قابل درکه ولی من تو دوره دانشگاه این که آدم این همه کنه وقت بذاره سری کلاس توی کلاس منتظر باشه فقط ببینه کلاس که تموم میشه خب زیاد من نمیدونم قابل درک نیست یکی نیست بگی آقه شما با این همه انتظار برای تموم شدن کلاس و فرار از مکانهای آموزشی این درس رو کجا خوندی؟ این مشقه رو کجا کردی؟ واقعا؟ یا از بس انتظار کشیده ای چشمتان به درد سفید شده است آیا دیگر طاقت انتظار کشیدن و منتظر ماندن را ندارید آیا برای فرار از این همه انتظار به دنبال یک راه می‌گردید با ما تماس بگیرید انتظار گریزان هر چیزی که شما منتظران هستید را در کمترین زمان ممکن برایتان محیا می‌کند اگر همیشه چشم به تا فرزندتان دیر نکند و شب زود به خانه بیاید او را فقط به ما بسپارید مادر چه خوب کردی زود اومدی امشبا میتونم راحت بخوابم مادر من وقتی به انتظار گریزان زنگ میزنید که راهی بر آدم نمیمونه جز این که زود بیاد خونه انتظار گریزان در خدمت شما عزیزم شب زود میای خونه یا انتظار گوریزان رو بفرستم سراغه نه نه نه قربونست بیره. هنوز شوی انتظار گریزان قبلی کبوله خودم زود بیام بار میدن حالا شد با انتظار گریزان انتظار خود را به خاطره تبدیل کنید انتظار گریزان اما خانم‌ها آقایون دختر خانم‌ها آقای پسرا انتخابات برگزار شد و اگر برگزاری این انتخابات برای هیچ کس هیچ حسنی نداشت برای ما یه حسن داشت. اونم اینه که اوس محمود رو دوباره ما در میادین دیدیم. اونم به شکلی خیلی آپدیت شده. الان این صدا رو گوش کنید خبرنگار داره تلاش می‌کنه با ایشون کی اومدن رأی دادن مصاحبه کنه بعد از رأی دادنشون البته آید دکتر ببخشید یه سوال فقط به زنگ ماچت بگم فقط بفرمایید دکتر دارا انتخابه امروز به صورت لیستی به کاندیدا رأی دادید یا به صورت انفرادی رأی کردن مخفی دیدید بله دیگه مخفی دیدین ولی اولش جدی واقعا عثمان محمود داره به کجا میره فکر کردیم اینکه ایشون رفت مثلا نمجوری مادر مرحوم چاوز رو بغل کرد دیگه حالا پیش و پیش آمدی بود و اتفاقی بود و گذشت تو نگو ایشون کلا یه جورایی خیلی سکسی تخیلی شدن این واخر دیگه جوری که خبرنگار میرزه سوال انتخاباتی بکنه ایشون میگه بده بیاد بیاد ماچو خلاصه دوستان عزیز به خصوص خانم ما مواظب باشین نوس محمود یه خیلی خطرناک شده یه دیگه, دیگه نزدیکش نرین اما دیروز توی حسینیه شاد آقای کوچک زاده نماینده بسیار بسیار دلواپس مجلس اول برنامه هم گفتیم رفته بودن رأی بدن ظاهرن ولی خب مردم حاضر در این حوزه انگار که خیلی علاقه به ایشون نداشتن و غیر از اینکه شعار درود بر و ته صف گفتن و ایشون رو هو هم کردن این شکلی از ایشون استقبال کردن باید. بله, بله. حالا در ادامه خبرنگار تلاش کرده بره با ایشون مصاحبه کنه که تو این مسیر اتفاقات جالبی افتاده اینم گوش کنی آقای محترم خواهش می‌کنم بفرمایید آقای عزیز آقا بذیش خودشون جواب دادن به شکل خودشون جواب دادن حالا نگند ندیدن دیگه شما تو می‌ترید برنده خایل بود اصلا راید خایل درو باز کن تو صحبت می‌کنید جواب ما رسید ساکت آقای محترم بچگی باشه باشه من دارم کار خودمو میکرم بچه های امنیتی که را میکرم داخل باشی مسابقه کنی شنید این آهای محافظ گفت بچه های امنیتی آره بوینه بوینه که خبرنگار مربوط هم کم نیبود دیگه فرصت آوردن اینجوری امثاله های کوچک زاده فقط توی همچین روزای دست میده دیگه البته تداز زیادی از هنرمندان داخل کشور هم اعلام کرده بودن رأی میدن یکیشون حمید فرخ نجات بازیگر سینما بود که هم از این فضای باز انتخاباتی استفاده کرد تقریبا دیگه هر چی تونست دیگه تو صف رأی وایساده بود دیگه اومد و بعضیا گفت دیگه متاسفانه خیلی روزیشون و نونشون توی تنش توی در واقع تحریم است و ملت هم خب به واقع خسته شدن این حضور خیلی از اینا شاید داره اینو میگه و نتیجه آروم اینو بگه ولی خب میگم متاسفانه تو شرایطی هستیم که یه اصلا میخوان این فضای مکدر حاکم باشه یه نمیدونم اصلا برایشون مهم نیست سرنوشت این کشورهای همجوار رو نمیبینن مهم اینه برای که در واقع تو تحریم ها کاسبی بکنن دلالی بکنن بله ضمن آرزوی این که اتفاقی برای آقای فرح نجاد نیفته این بخش رو با شادی بعد از گل که نه شادی بعد از انتخاب شدن یک نموگنده و طرفتاراش توی ایک از شهرستانا به پایان میبریم با این توضیح که به جان خودم اصلا یعنی ماها هیچ دخت و تصرفی توی این فایل صوتی که الان مخواهیم پخش کنیم نداشتیم یعنی این فایل صوتی هیچ ربطی به قبایل سرخ بوستی اینا نداره زارن دوستان دارن کل میکشن فقط خوشحالا خیلی خوب کر شدم بابا دیگه شما قول بدین اگه کاندیدای مورد علاقتون رأی آورد یا کاندیدای مورد تنفرتون رأی نأورد دیگه یجور خوشحالی کنید همسایی ها معذب نشن طور خدا امکان احساسات احساساتو گذاشتن برای همین روزا دیگه والا ماشین مشکی ممدلی هر زنوبی محسلی ماشین مشکی ممدلی دلی بغداره نه سندلی زی شما چی؟ شلوغش شلوغش میکنه بابا یعنی اصلا شما زبان ها این, این دیگه با یه قوره چی؟ سردتون میکنه با یه مویز گرمی بالا بابا ما را این زوری نگاله کن ما هم سی ساله قریب این انتخاباتو از نزدیک نزدیک میبینیم دیگه نوکره تن زونه؟ نه این چه خب زبان های الان باسبادتارن که باشن ما که دیگه از تو غار نیمد نه یه حرفایی میزنی آخ میگم مثلا اگه الان بیان با من مصاحبه کنن بگن تی بگن آقا دشتی به نظر شما مشکل اصلی ایرونیاتیه میدونید تییه میدونی میگم تی میگم جوگیریه والا اول انقلاب همین مردم بودن عکس امامو تی تو ماه میدیدن دیگه می نبودن مگه الانم ولشون كنی تی عکس یكی دیگرو میبینن یه جا دیگه نه ببین نه ببین من خودم تو همین دیروز نمیخواستم رأی بدم به زوری شما اینقدر این دختر ما تو گوش ما خون اینقدر هی رف اومد هی رف اومد گفت بابا پس آینده من چی میشه اصلا من دیگه رعی که هیچی آذر بودم یه پولی هم بدم اینه دست از سر کسال ما برداره ول میگه گرم من که آخرش عبزیاخه کار خودم رو کردم من که به اینا رأی نمیدم که نو کرتم تو برگه رعیم هم نوشتم همه ایره آیده مستی ها ها من دیگه به این اخون مخونده تی رأی نمیدم عبزی جونم سی شده ترا قاطی میکنی عبزی رعی بوده دلم خواسته اونجوری بدم مال من بود م... مگه نه مگه من به شما میگم ترا به اینا رأی دادی عبزی تاردیواری اختیاری یا شما خودتون که بدتر از اینا این بابا دلم خواسته تی به اومیرا رأی دادم عبزی آدمی جونم پیاده میشیم همینجا آبزی داری تون میری ببین از ما گفتم باشه ببین تو بیار پایین آه نگه میدارم خدای پولی به ما بده یه عقلی هم تی باز بده به ما بیا بابا بیا یه بی بار ما خدا خدا روزی تو یه ده دیگه بده اینا همه تیشون زوریه نیستیم بابا ما زیر بار زورباراتی نیستیم امینامونو گوش میکنیم اصلا حالا که این زوری شو. So my dear, بله رجب انتظار داریم حرف میزنیم و امروز رجب انتظار تو صف دیگه صف یه چیزیه که همه باش آشنا یکی از انواع انتظار که خب معمولا نم زیاد باش سر و کار داریم همین انتظار کشیدن توی صف جونم براتون بگه که دیگه عادت کردیم از سالهای گذشته کلا ما به این صف عادت کردیم صف حالا انواع مختلف داره اصولاً انتظار کشیدن و شگرت های پیچوندن صف و جلو انداختن نوبت و اینا هم تو صف‌های مختلف شبیه هم نیست یکی از سختترین و جون ترین انواع صف، خیلی ببخشید، خیلی ببخشید مربوط به صف داشوییه. تعارف که نداریم که آقا، دیگه هممون میریم دیگه. کمتر کسیه که اون لحظات سخت و طاقت فرسا رو این پشت در داشی دمول نکرده باشه. خیلی سخته. یعنی حداقل تو خونه و محیط کارم تجربه نکرده باشین، چه میدونم مثلا توی تعطیلات تو سیزده بدر. مثلا تو پارکا، سیزده بدر که می تجربه کردید دیگه. یادتون اومد؟ آ این جور صفا رو هیچ جوری نمیشه پیچوند. چون همه با چنگ و دندون از نوبت خودشون دفاع میکنن ولی همیشه هم اوضاع انتظار کشیدن توی صف انقدرم بد نیستا خیلی وقتها همین صف ها یه فرصته که آدمو با هم معاشرت میکنن حرف میزنن آشنا میشن حالا البته خیلی جایی که دیدن مردم زیاد دارن با معاشت میکنن صفح بیجهحت مثلا طولانی شده صفح های زنون مردمن از هم جدا کردن این فرصت ها کمتر شده ولی خب قدیم ما تو صف ملت همدیگر میدیدن آشنا می گپ میزدن حرف می زدن. شماره میداددن شبوه می اوومدن بزرگتررا تو توی صف با هم صحبت میکردن قرار مدار میذاشتن خلبص خیلی از ازدواج ها رو این یعنی گامی کردی تهش به صفحی چیزی خط می الان این متاسفانه این جنبه مثبت صف خیلی جا از می رفته واقعا خیلی یه جور دیگه شده کلن صفحا انتظار تو صفحه توالت عمومی وقتی <تصفيق> که داری میترکی اینه این این همین آقا <تص> تو را خدا زود باشین ورده آقای تو را خدا یکی نوبت چه بده به این بنده خدا بابا بیا برو نریزه حالا وسط برنامه خیلی فشار روش بود بیچاره بمیرم الهی چون ساعت امطو صافی ما فقط کولا مانوز افتاد ما داخل بود که ما اومدیم اینجا ها افتام زده بود من خودم دیدم اون ورت آسمون روشن بود بر. می بابا میچم الله دای حساب پدال مون داره ما سب جلو نمیره چیکار دریم بابا مگی داره بعد میگذره به ناوال خوب آخه خسته شدیم شد ولی ما چهار تا قورسمورچ بخوریم دیگه میگیریت ایندازا میگن بشین سبزی باکو ای خون بابا بذار کاپمونو بزنه من یه سوالی من یادم واسه ساعت بود؟ م... منم یادم رفته رفتم به خودم میخوای از این داتا خانم پیرا به پورسیم سر باشه ها دل <تصفيق> کن قاتی سابچ نکم اه... من توی صفحه دیگه دیدمشون رفتم جلو خو... خیلی تو بیافه بوده ولشون کن حالا رو میشه ولی اون چهار تا چهار خونه خیلی خوبه عوض برم بپرسم میگم دل اه... کن مادا دیگه ای بابا اه... چی شد؟ تو صفحه رفت تا که چه... یان گد گور زد کنم داره میره جلو صاحب اه... اه... من چیکار کنم ببی مرا باش خیلی خوشم اومده برو با خودتو سباک نکن نگی hey هی بهش میگم خوش نمیده اینا پا نمیدن چی حالا بزر برم فایم باب گانجیش کم مفت دیگه جامع نگه داری برو بابا اکی پا داده ها بدی منم بیام اچکاری نکنی ها باشه باشه بلا باشه <تصفح> راستش به نظر من انتظار کشیدن با بیشتر شدن سن کار آسونتری میشه یعنی مثلا ننجونم اگه میسپره که براش دو تا نون بخرم یه وقتی که دارم میرم خونشون میتونه تا دو هفته بعد که میخوام برم سرشون بذارم انتظار بکشه قرم نزنه در عوض این بچه‌ی دوستم که هفت سالشه اگه اول مهمونی بهش بگی آیدین جان خاله اگه آروم باشی آخر مهمونی بهت که جایزه میدم هر پنج دقیقه یه بار میاد آخر مهمونی نشده هنوز نمیدونم مامانش هست دست این بچه چی میکشه ولی من که هر بار آرزو میکنم زودتر پیر شه بلکه هم یاد بگیره چطور باید منتظر بود حالا اینکه وقتی اون پیر میشه ماها کجایی منتظر چی هستیم بماند. ای با سلام 21 کسی شب را زمین کف کردن از نتایج انتخابات افتام اسفند ما؟ با مروری و اناوین مهمترین خبرهابی امروز و آغاز می نموی. دستگیری چند آمل تروریستی در حین انتخابات بر اساس گفته های وزیر اطلاعات و در ها از ایشان که الان شما تروریست ها رو بل کن جنتی و به چسیه و جفبان اپل رو قرار نگرفتن آبیاب تو ازام مصباح یزدی و یزدی در لیست منتخبین 16 نفره خبرگان و استان تهران و نظر کارشناسان که با این وضعی از هم تو انتخابات شرکت کرد مردم بهش نه و رشتے پانزده درصدی سقط جنین در ایران که یه ده, ده ماه گذشته و نگرانی ها شکست شدن دل مقام معظم رهبری به خاطر اینکه مردم واسه دل ایشون هم که شده بچه‌هاش رو نگه نمیدارن سرخط مهمترین خبرهاوی امروز و امشب را شامل میشدند اینک مشروح خبرها با همکارم وی وی بوسالوم. یکی از مقامات مسئول کارگری کشور گفت ردیدترین محاسبات از وضعیت دخل و خرج خانوار از افزایش هزینه خوراک ماهیانه به 754 هزار تومان و عبور کل مخارج خانواده ها از مرز 365 هزار تومان حکایت دارد در همین رابطه یکی از کارشناسان ضمن زیر سوال بردن این آمار به خبرنگار ما گفت در سه چهار میلیون تومان در ماه اصلا کاری ندارد و خوشبختانه کارگران عزیز ما در حال حاضر در رفاه نسلی خوبی به سر میبرند پایان محروع اخبار ای آقای میکروفون تلا اینش رو بگین این کارشناس شما کیه من میخوام ببینمش کارشناس کجا بود با خودم ای... نوشتم این رو بل, بل چی آخه <تصفيق> این همه کارشناس هست چرا خودتون مینویسین آخه هرکی زنی زدم گفت ای... وقت ندارم منتظر نتیجه انتخاباتم خب آخه ای... اینا که خودتون نوشتین اشتباهه آقای میکروفون تلا ببین بل, بل. من یه چیزی مینویسم که این برنامه ای... پا بمونه. بابا. ای... چی بگم من این ای چی نگم بهتره من رفتم شب خوب برو با برو من خونه دل خوردم این برنامه رو به اینجا رسوندم الکی نمیام که گذک بدم دست کسی که هی میاد الکی گیر میده به ما موییت <تصفيق> بله وای، در خدمت کارشناس امنیتی انتظامی اطلاعاتی برنامه بله. جاوای جناب سرهنگ هست من بندم سلام عرض می‌کنم ما در خدمتیشن اونندگانی عزیز هستم. سلام اوضای امنیتی انتخابات چطوری بود؟ بسیار عالی بود. پلیس پادی 25000 نیرو و 26 فروند هواپیما و هلیکوپتر به خوبی تونست امنیتی این انتخابات رو تأمین کنه آفرین آفرین بله گشت ارشاد در این روز بله, بله. گشت ارشاد گشت م? ارشاد نداریم ما تو روز انتخابات که. یعنی چی؟ یعنی مثلا تو روز انتخابات هر خانومی با مانتوی کوتاه ساپورت بله. آرایش غلیظ موی بلند روی سیان ناخن دراز و اومد تو هوزی رای می... و میلیونی غلیلا هیچ کسی کاری به کارش نداش هیچ چی, <تصفح> چی میگه شما آقا حالتون خوب نیست که عرض کردم تو روز انتخابات گشتر ارشاد ماموریتی نداره ولی نیروهای پلیس همه جا حاضرن همیشه ای بله من فکر ف... کنم کسی بدون ساپورت و مانتوی کوتاه هم بیاد بیرون روز انتخابات چه کاری بهش نداره سرهنگ بببینید منده متوجه منظوری شما نمیشم آقا جان آ سر این منجورم اینی که خواه. اگه حجاب یکی مشکل داره دیگه روز انتخابات غیر انتخابات نداره که کلا مشکل داره دیگه ندیگه ببینید پلیس اولویت بندی دارت ماموریت‌هاش اصن اینجوری نیست که شما بهش نگاه میکنید که آره دیگه نمیشه از یه طرف به مردم این؟ التماس کنین بیان رای بدن از طرف دیگه بندازینشون تو وان ببریدشین مونکرات که واغن شدن نیست سران درست آقا از شما سوال دیگه ای نداری من با توجه به در جریان بودن شما ها رو بازم برام به مسئولیتم رسیدم می‌گونم میگم از این برای بچه‌هاتون که سر صندوقن خواه. یه امالی چیزی نداری از شما روش. الان برای مردم بگی داغ داغ. نه نه. این جنتی اینا بالاخره چی شدن؟ رای آوردن، رای آوردن. یعنی ببینید اونها بمامرد بود، نیست. ما مسئولیت امنیتی صندوقیم آقا جون. آلا با من تماس کرد گفت امنیتی صندوق کامل برقرار. اوه اوه قندی؟ او او بله, بله. این دستپاچلوفتی داخل می‌ذاری مواظب صندوق بله. باشه سر همین. آقا درخواستت کن در مورد این مأموری قاله. من سرباز میدم یه بار مأموری محافظ صندوق بدم. والا موقعی شمال شهرایم بهم گفتن بیا کمک آقا هر کی رو میخوندن من واسه یه خانم علائم می‌زدم واا <تصفح> واقعا خجالت آوره کی بود حالا فامیلتون بوده نه با میخاستم برم مجلس خواه؟ بعد که سربازیم تموم شد برم باش ازدواج کنم اون کار کنه منم لذتش برد <تصفح> پس شما مخاط از خیلی وقتی پیش مشکل داشتید من فکر میکردم جدی الان اینجوری شدی شما ببین سرنگ دلم میخاست این خانم هستن شوهرش این دکتری بعد میگن خانم دکتری. به منم به خاطر زرم بگن مثلا آقای نماینده یک حالی میدهد به خدا شفا واقعا مریض بعد حالی شما تموم هست دیگه بریم آقا جون تموم هست دیگه با تشکر توجه شما توم شبی دیگر و برنامه دیگر و سرهنگی دیگر خدا هم نگه دبین سرهنگ از این حوزه شلوق هم دوست داشت ما مثلا نماینده که بندر ترکمن، کردکوی بندر گز اینا مثلا متاسفم شما همین جور دارد حالت بدتر میشه یا اصلا حوزه فردوس تبس. اینا... سراغیان بوش خیلی با کلاس خدایی شد یا عالمه جاست ببین آقا جون چیزه... شما دارو آتو بگمونم فراموش کرده دوباره بخاریشون نه با این نمایندگی مجلس این حرفانه نداره کی؟ نه نه ببین خط هر ناکه شما دارو آتو بماغه بخوا خیلی <تصح> حال <تصح> اول بیر موجود امروز مصادف با 9 اصفند ماه 1394 در تقویم ایرانی با عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نامگذاری شده است. گفتهنیست مصرف کنندگان ایرانی بعد از اطلاع از نامگذاری این روز به نام آنان به افتدا کردند در برابر دوربین مخفی قرار گرفتند. وکلی تلاش کردن تا این دوربین را پیدا کنند یا حداقل از زمان پخش این برنامه مطلع شوند تولید کنندگان ایرانی هم بعد از اینکه متوجه شدند چون این نامگذاری برای این روز انجام شده است با الفاظی چون بیشین بابا حال نداری و مصرف کننده هم مگه حقوق داره آخه نسبت به این روز اعلام موضع کرده این روز را به همه مصرف کنندگان عزیز تبریک گفتند هفته پیش خبری رو داشتیم از دستگیری کسی که با حک کردن موبایل ها و کامپیوتر های شخصی یه عده از همه جا بیخبر به سیستمهاشون نفوز میکرد اطلاعاتشونو که حالا یا مشخصات حسابای بانکیشون بود یا مثلا عکس و فیلم خصوصی بود که روی گوشیهاشون داشتن سرغت میکرد چجوری؟ اینجوری وی با ارسال پیام های مشکوک برای افراد و باز شدن این پیام ها توسط اونها اقدام به نصب نرم بر روی گوشی های همراه بله یه لینک میفرسته توی حالا تلگرام یا وایبر یا حالا هر جای دیگه به عنوان آخرین پارتی خصوصی فلان بازیگر کلیک کن از اینا که هرجوری یه میلیون تا هر روز می‌بینی بعد طرف کلیک می کرده مثل شماهایی که کلیک می کنیم که بره مثلا تو پارتی خصوصی که اینجوری می شده. من اونی که فشار دادم و تا لو که اون لینک باعث شد که این مبلغی که از حساب شما داده شده نزدیک 10 میلیون تومن بله حالا ها هی ما بگیم آقا هر لینکی اومد همون زیرتی روش کلیک نکنین هی شما گوش ندین هی برین کلیک کنین هر چی می‌بینین برین کلیک کنین تا هم اینجوری حساب بانکیتون خالی بشه هم عکس‌ها و فیلم‌های های خصوصیتون بیفته دست هکر و بعدش هم پخش بشه تو اینترنت به نکنید نکنیم نکنند. به خدا دیدن پارتی خصوصی فلان بازیگر رو نمیدونم پشت سهنه های مثبت هیجده مسابقه یه نمیدونم استیج و استیج کنه اینا ارزش حق شدن رو نداره ای ها ما میگیم ای شما گوش ندی؟ آیا از انتظار های جانکاه در صف های طولانی به سطوح آمده اید؟ آیا مایل لیستی بیش از این وقت گرامبه های خود را با رعایت نوبت در صفح به پای وقت بیم دیگر نگران نباشید فقط کافیست با یا آموزشی صفش کنان تماس گرفته و در دوره های آموزشی نفوذ در صف ثبت نام نمایید دوره فشرده تو با تکنیک قسم و آگه <تصفح> این باره تأسف خانم خانم با شما به فارما تأسف عجب بساطی ها وای چی آخه من همین جا بودم دو دقیقه رفتم اون بر اومدم ها من اینجا بودم اصلا کسی نبود اینجا به خدا دوره های تخصصی زنبیل گذاری و نشان گذاری در سفر عزیزم چه زود برگشتی خونه به به میبینم که هم سنگک خریدی هم صف شیر وایسدی هم شیر گرفتی چطور آخه به این سرعت چطور؟ عزیزم من دیشب کل منطقه رو بایست از جزوه های آموزشی صف شکنان زنبیل گذاری کرده بودم اینه که اصلا صف وایی نستدم وای چقدر خوب دوره های آموزشی دلبری و مخزنی در صف؟ بخشی بله خانم بفرم. جای من اینجا جلوی شما نبود ببخشید فکر نبکنم چه بر... مطمئنی امیشه بیشتر فکر کنم. فکر کنم اینجا جلوی برد حسیز <تصفح> <تصفح> و دوره های نفوز و گام به گام در صف با متد منحصر به فرده صفش کنان با محسسه آموزشی صف کنان دیگر وقت گرانبهای های خود را در صف بهدر ندهید صف کنان اما هر جا صف وجود داشته باشه یه دیم هستن که به شیوه های مختلف میخوان این صف دور بزنن و بپیجونن اینجور آدم ها همونایی هستن که وقتی میشینن پشت فرمون ماشین تبدیل میشن به چی؟ ای گفتین؟ نه نه اون که بده حالا. تبدیل میشم بچه زرنگ. اون بچه زرنگ. اینا مثلا پشت چراغ قرمز ای بندازن توی لاین بغلیو برن جلوی جلوی صف رو خط اوور وایسن که مثلا به محض سب شدن چراغ اولی ماشینی باشن که از چارو رد میشن فکر میکنن اینو خیلی زرنگن. غافل از اینکه این کار اسمش زرنگی نیست. اسمش چیه؟ این حالا هرچی ما که حرف بعد نمیزنیم حالا تو برنامه. هر چی حد زرنگی نیست اسمش دیگه. چه کاری یا مثلا دیدین بعضی ها وقتی مثلا میبینن یه صفه طولانی ماشین میخواد از اتوبان بپیچه مثلا توی خروجی میخواد برن توی خروجی میرن از سمت چپ سبغت میگیرن از همه سبغت میگیرن جلوی جلو میرن جلوی جلو میخواد زورچپونی برن تو خروجیه دیگه اینو همه دیدین دیگه این اسمش زرنگی نیست یعنی انجام دادنش توانای خاص و فوقلادهی نمیخواد یکم فقط چیز میخواد چجوری بگم یعنی چیز قابلش ولش کنین دیگه و چه کاریه نکنید نکنیم نکنند والا ا ما که بچه بودیم آی از سوء سو استفاده میکردن در امور صفی. یعنی اگه اعضای خانواده همه می رفتیم جایی که صف بود حتما من که بچه بودم اون می فرستام برم تو صف تا دل بزرگ سر رو بسوزه بذارن برم جلو حالا فرقی هم نمی که صفحه نوبایی باشه یا صف کوپن اقلام مورد نیاز من کودک بود خیلی زبر و زرنگانه خودم و از بین بزرگتر رو می رسوندم سر صفح وگه میگفتن بزرگ سرت کو می گفتم الان میاد رفته کیف رو بیاره اون وقت بود که مامان یا بابا به بحانه بنده خودشون میرسوندن سر صف و کارشون سری را میفتاد در واقع اینقدر که من تو زندگیم تجربه انتظار در صف دارم باقی اعضای خانواده ندارن تازه فکرم میکردن دارن به من زبل بودن و یاد میدن نکنین با هاتون اینجوری همون صف مدرسه براشون کافیه باقی رو خودتون وایسین بزرگتره عزیز تا صبرتون زیاد شه والا A fire around. Heaven's falling down. See. توی دوران سالمندی انتظار آدم ها گای وقتا غمانگیز میشه مثلا میبینی مادر یا پدر عزیزمون همیشه چشم انتظار و چشمش به در مونده بهش میگی منتظری کی هستی؟ میگه بچه هام یا نواه هام که بیان یه سری به این تو خب زندگی این دور زمونه هم خب درگیریشون خیلی زیاده آدم ها خیلی وقت بیشتری رو باید صرف کار و زندگی و هواشیش بکنن اما خب دیگه کردن انتظارات بزرگتر هم کاریه که خیلی وقت تو اولویت پایین تر قرار میگیره و گاهی وقتا اصلا فراموش میشه اما این هم هست که دیگه یه سالمندی که کاراشو کرده و حالا یاردشو بیخته و علکشو آویخته چه انتظاری میتونه داشته باشه با بسته دیگه آخه بندگان خدا یه منتظر بودن بسته الان باید در آرامش استراحت کنن حالشو ببرن دیگه چرا که نه والا همش انتظار انتظار انتظار انتظار. وقتی خوب توی فیسبوک مریم یه کامنت داده گفته نصف زندگیم رو منتظر بودم ساعت روندشه برم به کارام برسم دیگه هلا خوب مال شما گیرت سر ساعت بوده حالا بعضی بیشتر زندگیشون در انتظاری میگذره که ماه یا سال روند بشه مثلا یه کاری بخوام بکنم بعد از ضتون که نوید گفته بدترین کاری هم که آدم میتونه بکنه اینه که باعث انتظار به در مادرش بشه شبایی که من دیر میومدم خونه و یا اصلا نمی فرداش مامانم همیشه به میگفت امیدوارم بچه خودت هم همین کار باد بکن حالا واقعا چی خب دیر میخوام بیا یه زنگ به بده خون بیجیگر میکنین اما این هفته ای که گذشت خب هفته انتخابات بود و با توجه به اینکه استقبال از این انتخابات نسبتا خوب گزارش شده صفای رای دادن تو حوزه مربوط مربوطه هم حسابی به چشم اومد توی این صف خیلی وقتا خیلی از بحران های سیاسی مطرح میشه به بحث گذاشته میشه و خیلی وقتا هم براش راهکارهایی ارائه میشه که اصلا های مربوطه تو خوابم نمی یه وقت هم انتخابات خیلی ا میشه یعنی هیچ باید نیست تو صفای انتخابات دعوا بشه یعنی طرفداران این نامزد نام. اون اون نامزد یهو مثلا بیفتن بجون همون تمام وعده‌های انتخاباتی نامزداشون رو هم نام چی بکوبن تو سر همدیگه که اصلا آدمم بجوش بمونه که چیکار دارن میکنن البته خب خیلی هم هستن که خیلی شیک و جذاب و بدون دردسر متمدنانه میون رأیشونو میدن و خدافظ میرن ولی خواص دیگه صف که البته اول برنامه مشایکه کردیم بس پیدا شدن خاصهگارو نشون کردن دختر مورد نظر رد و بدل شدن به شماره و چشمک و اینا هم که دیگه تو هر صفی هست توی هم هست دیگه و قدیمی ما بیشتر بود ولی کمتره از روهای دیگه ای به حال رد و بدل میکنن و ولی خب دیگه خصوصا این که مثلا طرف طرفدار کاندیدایی باشه که شما هم میخوای بهش رأی بدی و اینا خیلی فضا فضای خاصی میشه تو این صف‌ها و تو این انتظارها عل انتظارهای دلچسبیه تو این صف‌ها خلاص صفحه های آخر چه تونتون برقم می‌خورن. امروز برنامه 990 راژیو پس فرده بود و تا برنامه هزار چیزی بیشتر نمیده امشبم تموم شدیم شاعر میگه آنچنان بیدریغ تنیدی به تار و پود این شهر به خیال گس این کوچه ها به التحاب تبدار این هوا به یعس خاک این خیابانها که سال‌هاست در پیت دوره می‌کنم تمام خوابهای تهران را می ترسم از تاریک روشنها از قبل و بعد گریه زنها از زندگی با هم ولی تنها از بدرق تاراه آهنها از شوق غمگین رسیدنها از دوستت دارم شنیدنها از هرچه با من هست میترسم میترسم روی روی میزه او، از آرزوهای آزیز او، از اسم روی سین ریزه او، از ریتم موسیقی ماریز او، از ریتم موسیقی ماریز او، از هرچه بماند می تسلم می تسلم. به را انگیزه ی آن چشم و را آن خنده های ماجراجو را آن تخت خواب آن بو را گم کرده بودم آن خیابان را پرواز روی بام تهران را بغز چنار سید خندان را کار قرار توی و را آن موی بی پریشان را آن موینی رحم فریدا من می روم من می روم پیدا کنم.